بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلين و علی اجمعین اما بعد اخوان برکت صحبت کردیم در بحث نشانهای های قیامت بحث 30 تا از مدعین نبوت بود که در حدیث اومده بود بین ذی الساعه سراتونه در روایتی هم 27 تا دروغ گفت که جنب بس این بین دو روایت گفتیم که عرب عادتشه که تغلیب میده غلبه میده کسره جبران میکنه بیسته هفت بعضی ها گفتن بیسته هفت بعضی هم با همون لبز سی یا جبران کردن اون کسری رو با همون سی روایت کردن اما روایت افتا تا گفتیم سبعونه کذبا اون با اون زیادی با اون معنا روایتش درست نیست و ثابت نیست و گفتیم یه قسمتش بحث مدعین نبوت و قسمت دیگر هم بحث کسانی بود که دروغ بر رسول الله صلی علیه و سلم می‌بسن و مثال‌های هم‌ذلی کسانی که اومدن دروغ بستن مثل نوح و مریم به که مردم رو تشویق بکنن به دین داری قصشون خوب بوده ولی که دین نیاز به ما که بر دین دروغ ببعدین دین کامله که یکون فی اخر امتی و ناس یحدثونکم ما لم تسمع انتم ولا ابائكم ایاكم و ایامهم بر حذر باشید یعنی کسانی که میان و دروغ می‌بندن بر رسول الله الله علیه و سلم بر حذر باشید از اونها این خلاصه بحث خلاصه گذشته که ما داشتیم از جمله مسائلی که در نشانه های قیامت بحث یاد میشه در این موضوعی یعنی مسئله یاد میشه بحث مرگ مرگ فجعت یا یهوی که چنانچه در حدیث اومده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند موت الفجعت اخذت و مرگ فجعت یعنی یهو میبینید شخص فوت میکنه حالا شاید گاهی جوان سکته میزنه فشارش بالا میره و یا اینکه که از اون باشه شاید مثلا یهو تصادف بکنه یا هر حادثه دیگر پیش بیاد ولی جایی این مرگ همراه با چی هست همراه با خشم خدا اخذت و اصف یعنی همراه با خشم خداوند یعنی شخص عقوبت میشه اون شخص خلافکار اون شخص مجرم اون شخصی که از خدا غافله اسراف میکنه در گناه یهو خداوند روحش رو قبض میکنه یهو خداوند قبض روحش میکنه و اقوبتش میکنه در در حالی که دوزی میکنه یا در حالی که کار خلاف انجام میده همونجا خداوند روحش رو قبض میکنه این از نشانهای قیامته بحث اینه که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم ما رو هشدار میده حشدار میده از مرگ برحضر باشید یعنی که مرگ به سراغتون خواهد اومد و بدونید که وقتی هم مرگ ناگهانی بشه. یا بالاخره از اقوام و نزدیک خودمون دیدیم یا اینکه شنیدیم بالاخره روزانه ما داریم میشن این فلانی فوت شد فلانی فوت شد جوونش گرفته تا پیرش و مسنش نوبت ما هم میرسه کسی هم نمیتونه از این واقعیت تل خرار بکنه ولی که وای بر حال اون شخصی که که خداوند روح او را قبض بکنه در حالی که بر او خشوعی نیست ناراحته در حالی که خداوند بغضش رو داره این بس‌ترین عقوبت بر شخص با بدترین حال از دنیا بره در حالی که ایشو نوش میکنه در حالی که از خدا غافله در حالی که از نماز خدا غافله خداوند رو قبض بکنه. کنه نیاز به تعمل داره نیاز به فکر داره نیاز به مراقبت خدا داره بالاخره گفتم امروز نشود فردا میاد مرگ به سراغ هر کدوم از ماها میاد ولی که باید به خوبی از دنیا رفت باید با حسن خاتمه رفت باید با عبادت رفت. اما تو اون شخصی که بر روی شتر سوار بود در حالی که لبيك می گفت گویان بود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یبعث یبعث یوم القیامه ملبیا با لبيك گویان محشر میشه حش میشه بیرون میاد با همون احرامش با همون لبيك اللهم لبيك بیرون میاد حال اگر ما اگر در رفعت از دنیا رفتیم با معصیت رفتیم در حالی که موسیقی رو روشن کردن سوار ماشین ماشین چپ بکنه در اون حالت از دنیا بریم حالت خوبیه، حالت نیکیه. یا در حالی که تلویزیون رو روشن کردیم، زیر اون سخف خونه نشستیم، داریم نگاه این فیلم و اون فیلم میکنیم، یا موبایل دستمونه، با این نامحرم و اون نامحرم داریم صحبت میکنیم، خوشبش میکنیم. چشمون به نامحرم، دوششون به حرامه. زلزله بیاد، سخف خونه پیش بیاد، روشنمون برده. آیا این خطام خوبیه؟ آیا این حسن خاتمه بهش میگن که رسول الله علیه و سلم همیشه از خداوند حسن خاتمه رو میخوستن؟ این حس خاتمه نیست این خاتمه بدی هست این خاتمه عقوبته زلزله بیاد سیل بیاد یهو انسان قبض روح بشه یهو سخت خونه بر روش خراب بشه انسان باید مراقبت خدا داشته باشه باید به انتظار اون روز بنشینیم اون روزی که ملک الموت اومده با اعوانش خداوند برای ملک الموت هم ملائکی گذاشته که بیان قبض روش ما بکنن من نمیخوام پیرامونه قض روح و حدیث براب باب که خیلی طولانی هست اینجا صحبت بکنم اون وقتی که خداوند ملائکش رو میفرسته و روح رو از بدن انسان میکشه نمیخوام بحث رو پیرامون این مسئله مفصل بگم فقط اشاراتی فقط به این موضوع میخوام بکنم و اونم این که رسول الله صلی الله علیه و سلام اون مقامش با اون منزلتش با اون جایگاهش نزد خداوند با اینکه خاتم الان خاتم بود میگفت اینه للموت سکرات مک سختی داره حتی که سختی قبض روح مؤمن با قبضی روح کافر زمین تا آسمان با هم فرق داره قبض این روح مثل اون روح نیست قبض روح مؤمن که ما یقتل الماء و منفی استقاه همونطور که كا... آب از لبه میشه میچکه همونطور که آب از کوزه سرا میشه ولی که كا روح کافر روح بناهکار همچون پنبه خیسی هست که از لابلای خاک خار بیرون کشیده میشه، تیک تیک میشه، پاره پاره میشه. با کفن‌های جهنمی، فرشتگان عذاب خدا، فرشتگان جهنم خدا آمدن به سراغش. ولی که اون شخص مؤمن، اون شخص بهشتی، اون شخص با کفن‌های بهشتی، با بوهای بهشتی، با اون سینه هایی که از کفن بهشتی است اومدن به سراغش روحش رو کفن میکنن با اون کفن بهشتی آیا قابل قیاسه با اون کسی که کفنش از جهنم از آتشه؟ بله. چنین روحه روح روح شخص رو قابض میکنن یا به خوبی یا به سختی. وای به حال اون شخصی که به سختی بکشن. خود مرد سخت سخت چون انسان، فرزندش، پدر و مادرش، دوست و رفیقش، اون مالی که جمع کرده به این نیت که یک روزی خوش باشه به اون دلش بسته، به اون خونه به اون نمیدونم لباسش به اون نمیدونم زندگیش ولی این خوشی ها از بین میره او را در پارچه ای سفید میگوشونن که دیگه جیبی نداره که با خودش چیزی هم بکنه دیگه خودش هم هم میکنن نه که خودش نمیتونه هم بکنه بلکه او را هم هم میکنن او را میشورن غسل میدن تا اینکه بدنش پاک بشه ولی این پاکی پاکی بدن نیست پاکی باید پاکی قلبه، قلب باید پاک باشه، دل باید پاک باشه، اون دلی که مؤمنه، اون دلی که، اون دلی که ادعا داره خدا رو دوست داره، اون دل باید پاک بشه، اون ادعا باید حقیقی بشه، اون محبت، اون وجدان باید حقیقی بشه، نه اینکه فقط ادعا بکنم من مسلمانم، من خدا رو دوست دارم، ولی که از خدا قفلم دنبال دنبال خدا هم نیستم دنبال دین خدا هم نیستم غافل از خدا هستم باید انسان مراقبت اون لحظه رو داشته باشه. اون لحظه ای که خداون ملک الموت را فرستاده همراه ملائکه روحش و قبض میکنن. بعد از اینکه روشه رو قبض میکنن میبرن بالا سپس دوباره به قبر و منکر و نکیر اون لحظه میان سرش چه لحظه ای سنگینیه؟ انسان اون لحظه ای که می روحش داره نش از پاهاش داره بیرون میره، پاش داره کببول میشه سیاه میشه انسان می بینه. همونتو که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماین روح اذا قبل اتباع و البسر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دید و گفت که فرمودن اونجا فرمودن وقتی که روح قبض میشه چش داره نگاهش میکنه، چش خیره به اون روح که داره قبض میشه، شه انسان روح خودش رو داره می بینه روحش داره کشیده میشه. میاد به حلقومش به گلوش غرغر می باشه یاد من باشه در آخرین لحظه اقرار به ربوبیت و الوهیت خدا بکنه، اقرار به بندگی بکنه، ولی کن خداوند دیگه اون لحظه بهش توفیق نداد. دیگه اون لحظه به درد نمیخوره و جهاد بها و سیطنات انفسه. جهود کرد در که یقین داشت فرعون ما یقین داریم ما میدونیم، ولی که اسلاممون سرزبونه، اسلاممون ادعاست. این ادعا باید حقیقی باشه که دیگه مثل فرعون نباشیم که خداوند روحمون رو بکنه. در خااریک از خدا غافلیم و دیگه, تو دیگه توفیق به توبه هم دیگه بهمون به نده دیگه بدتر از همه خیلی سخته ان نل معوت سکرات و در نظر بگیریم با اون مقامش آب را گذاشته به غل خودش سرش رو گذاشته بر پای آیشه آب را میریزه بر پیشانی خودش خش میکنه بعد به هوش میان دیگه اللهم رفیق الاعلا پروردگار علال پردگار رف خوده رفاقت من عللا را میخواد و صداف تنای بهش رو داره. تمنای ملاقات پروردگار رو داره و میگوید ان للموت سکرات مرد سختی داره سخت مرد فکر نکنیم آسونه سخت در اون لحظه‌ای که روحمون در قبض میشه سخت اون لحظه‌ای که روحمون با ها بالا برده میشه معلوم نیست از علیین باشیم یا از اصحاب سجدین باشیم سپس به قبر گردون نمیشه معلوم نیست دری از درهای بهشت باز بشه بادهای بهشتی در قبرمون دمیده بشه یا دری از درهای جهنم باز بشه و بادهای جهنمی در برمونده میده بشه بله مشخص نیست جز کدوم یک از بندگان خواهیم بود خداوند این خشکی قلب را ازمون این خشکی که درش هستیم این قلبی که خاشع نیست در سر نماز خشوعی که خداوند ازمون خواسته در سر نماز خداوند این خوشوی رو بهمون بده و این قلب بخوشو نر بکنه این خدا، از خدا میخوایم که این قلبی که خوش شده این قلبی که سفت شده اون قلبی که باید در مقابل قران باید نرم بشه از خدا میخوام که نرمش قرار بده او انزلنا هذا القران على جبل الذي و خاشعا متصدعا من خشت الله خدا اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکرد سرس خدا دگرگون میشد ولی قلب ما نه از ما, ما معلوم نیست کجاست سر نمیدونم موبایل نمیدونم زن و بچه هست معلوم نیست کجاست آخرش میبینه که السلام علیکم و الله و السلام علیکم و رحمت الله سلام داده از نماز قلبش نمیدونم دلش جای دیگه بوده از خدا غافل بوده نمیدونه اصلا زنش کجا بوده در کجا پرواز میکرده آخرش فقط میدونه که نماز الان دیگه تمون شد چند رکعت خون در سجده چی گفت در رکوع چی گفت قافل اینطوری نباشیم بیاد داشته باشیم شاید این آخرین نمازی باشه که در این دنیا میخونیم و دیگه بعد از اون به بس ملاقات پروردگار بریم الله یتوفی الان فسحینا موتها والتي لم تمت في فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأمر خداها سمي ميرانات خداها كدستور ميدهات وبإجازية خدابان ملك الموت ميران روح إنسان را قبض ميكنم قل ملك الموت الذي وكل بكم بكيل صرف خدابان بإذن خدابان روح را فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون وقتك الرحل في الحلقون مرس وقتك شما تجيب واتششمت المشاهدين يقول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تقلقوا وهذا الشخص كما يعني فرشدقان خضابان ولكن شما نمي فقط تيمي منه وشخصك الرحل في ميشه خداوند خداون این آیات را گذاشته از باب تذکر این ها آیاتی هست آیات مرگ بحث مرگی که حق به سراغ همه ما خواهد اومد چه به سراغ اون بچه که در روی پاهای مادر قرار گرفته داره شیر مادرش رو میمه که خواهد مرد اگر خداوند خواسته باشه چه اون شخصی که نمیدونم میخواد بر مدرسه سوار ماشین شده یهو یه ماشین تصادف میکنه میزنه او را از دنیا میبره چون شخصی که سر کلاس شخصسته یهو سکتته میزنه چون شخصی که در بیمارستان خارو گرفتار خداوند به هر نحوی هر طوری که مقدر کرده در اون اجلی که خدا گذاشته در اون وقتی که خدا گذاشته روش از انسان را اون ملائکه خداوند میگیرن و یک ساعت نهقب لای از ساخرون ساعتت ولا استقون نه یک ساعت بعد یک ساعت به جلو اون لحظه روح, روح رو خواهند گرفت ملاقه خداوند باید ما اون لحظه باید آماده باشیم اون لحظه ای که یهویی یه پیش میاد یک دفعه هست انسان باید آمادگی اون لحظه رو داشته باشه و برحضر باشه و باید فکر بهش بزنه همونطور که خداوند در این آیات نمودی می میبید اینها رو گذاشتیم تا اینکه شما فکر بزنید الله یتوفل انفرس بدونید که خدا هست که ها را میگیرد نفس شما را هم خدا میگیرد همه ماها میمیریم همه ماها غسلمون خواهند داد الا که کسی غرق بشه همه ماها کفن میشیم همه ماها بر سر دوش حملمون میکنند همه ماها در قبل ما را میخوابونند همه ماها بعد اطرافیانمون دوستانمون فچاد پدر و مادر شاد برادرمون بیاد بر سرمون خواف بریزه دیگه اون ای که دیگه راه برای برگشت نیست اون لحظه باید انسان آمادش باشه. اون لحظه ای که انسان تک و تنها لحظه را می‌ذارن، سنگها را گذاشتن، اون دو طرفی که هم رفتن باهاش توی خاک میان بیرون، دیگه کسی بعد از اون دیگه پشت توی خبر نمیذاره. اون لحظه هست، بیل‌ها و کلنگ‌ها از یه طرف دارن بیل میزنن، اطرافیان هم از طرف دیگر خاک را بر میدارن، میریزن توی اون قبر. تره اون قبر؟ که بسته شد در اون قبل که بسته شد دیگه باز نمی شود تا آخر قیامت که روز محشر بیاد و در سور دمیده بشه و دوباره اون شخص بروید دوباره اون شخص بیرون بیاد چی می شود سالیان سال در اون دنیای ورزخ در اون دنیای محشر چی می شود چی میخواد رخ بده شخص از جمله مؤمنین یا از جمله گناهکارانی که می ها هن ها هن لا ادری ها ها نمی هست اشخاصی که خدا ازشون راضیه یا اشخاصی که خدا ازشون ناراضه تک و تنها باید باشی توی اون قبر توی اون تاریکی و اون قبرم برای خودش تنهایی داره اگر شخص نیکی هست اون قبر بعد از اینکه تن میشه اون قبری که باید بر سر همه ما تنگ بشه اگر مؤمنیم و جواب خوب به ملائکه اون اونجا هست که درهای رحمت باز میشه و قبر وسیع میشه به همین از دعاهایی که برای مرده وستعه مدخله. میگیم که مدخلش اون قبرش رو خدا بسیل کن اما قبر گناهکار اما شخص فاسق و فاجر و کافر چه میشه دری از درهای جهنم باز میشه و قبر به خودش سفت محکم میشه او را دربر میگیره تنگ میشه به خدا پناه ببریم از تنگی قبل به خدا پناه ببریم از عذاب قبل از اون باده هایی که در قبل خواهند دمید، از اون عذابی که از اون عذابی که خدا نوشته بر گناهکاران صحابه رسولا صلی اللہ علیه وسلم بودن با رسولا جهاد میرفتن ولیکن عذاب میدیدن بعضی هاشون در قبل لذلك في صدى صلى الله عليه وسلم أستنار دوت القبر عن صور كعد كعدالبديدان كأزاغ بكشن مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فرا أنهما يعذبان فقال وما يعذبان من كبير بلا إنهما كبير فألا فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في رواية بالغيبة إن دو شخص أزاغ مبينة نبو خطر بل كي خودش یکی از نجاست پاک نمیشست و دیگری غیبت و در روایتی نبامی میکرد بله عذاب باید بکشه چرا؟ چون گناه کرده شخص گناه کاره صحابی هست صحابه ای که اهل قیام و تحجد و نمیدونم جهاد بودن ولی ما چی هستیم؟ این عذابه. عذاب حق خداونده باید همه من در اون قب خوابنده بشیم و جواب منکرنکی رو باید همه بدیم ولی بعد از اون چی میشه دری از درهای جهنم باز خواهد شد یا دری از درهای بهشت خدابند مثل فرعان و اتباعش و نار و لعربون علیها و عشیه شب و روز ارزه بر جهنم میشی یا این مثل پرندگانی که طیری علق من شجر الجنه مثل مؤمنانی که همچون پرندگانی هستن که بر روی میبه های بهشتی پرواز میکنن ارواح مؤمنین و از میبه های بهشتی میخورن کدوم یک؟ از پرندگان جهنمی، از هایی که در جهنم باید بسوزن تا عبد و ده، یا از هایی که همچون پرنده باید بر سر درختان میوه بهشتی از این درخت، از این شاخه به اون شاخه پرواز بکنن و از میبه ها بکنن تا اینکه قیامت برفا بشه، تا اینکه روز محشر بیاد کدوم دسته هستیم؟ اصحاب یمین یا اصحاب شما؟ صلی اللہ علیه محمد و علیه محمد